به جان خاجه و حق قدیم و عهد درست که مونث دم صبحم دعای دولت توست سرش که من که ز طوفان نوح دست برد ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شوست بکن معامله ای وین دل شکسته بخر که با شکستگی ارزد به صد هزار درست زبان مور به آصف دراز گشت و رباست که خاج خاتم جم یاوه کرد و باز نجوز دلا تمع مبر از لطف بی نهایت دوست چلاف اش زدی سر به باز چابک و چوست به صدق کوش که خورشید زاید از نفسد که از دروغ سیه صبح نخوزد شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز نمی کنی به طرح نتاق سلسل سوز مرنج حافظ و از دل بران حفاظ مجوع گناه باغ چه شد چون گیاه نروزد